تاریخ دمشق ابن اساکر که از بزرگان علمای احل سنت هست می نویسه جابر ابن عبدالله انساری یه سوالی به دستم رسید این جابر همون جابر جعفی نخیر جابر جعفی از اصحاب ما باغر علیه سلامه این جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبره زمان پیغمبر بودند زمان امیرالمؤمنین بودند زمان امام حسن بودند زمان امام حسین اول زائر شدند که اربعین کربلا اومدن و در دوران امامت امام سجاد از دنیا رفتند بسیار پیرمرده موفق متدین عجیبی بود همون کسی است که امام حسن و امام حسین خرد سال بودن جابر اینا رو کل میکرد بغل میکرد نوازش میکرد اینا به جابر میفرمودن امو جابر از باب احترام به جابر ابن اساکر میگه این جابر میگه من خواستم برم پیش پیغمبر در اتاق که با کردم دیدم پیغمبر چارده سپا امام حسن و امام حسین رو شونه شون سوار کرده اینا رو سواری میده به قول ما از این سر اتاق میبره اون سر از اون سر بر میگرده من دمه در ایستادم اینجور نگاه کردم گفتم بچه ها به حالتون عجب مرکبی داریدا پیغمبر خدا حالا پیغمبر معصوم و ماینتقوان الهوا چی جواب داد جابر به من بگوه رسول خدا عجب سواره داری الله های پیغمبر خداست این مسئله ی پدر بزرگی فرزه پس پیغمبر ما نشناختیم بریم رو پیغمبر شناسیمون کار کنیم پیغمبری که جز به خدا نمی اندیشد و جز مسئله راه خدا براش مطرح نیست امام حسن و امام حسین خرد رو روشونش سوار کرده بعدشم میگه به من پیغمبر خدا بگید ای رسول خدا عجب سوارهایی داری یعنی با یک زبان بیزبانی بنده اینجوری بگم در واقع افتخار کن که اینا رو کول کردی خب این تعجب نداره با مگه در سوره کوسر خدا به پیغمبر نمیگه افتخار کن که زهرا داری نگفته فسل لربکا ونهر فسل لربکا ونهر سله اینجا چه صله است نماز بخوان یعنی چون به تو کوسر دادیم نماز صبح بخوان قبلش نمیخوام نعوذ بالله این صله چه سلده است؟ نماز شکر برو نماز شکر بخون ونهر نهر شطر کشتنه قربانی کردن وقتی انسان نعمتی خدا بشمیده در قبالش یه چیزی قربانی میکنه بالاترین قربانی چه قربانیه؟ شطور دیگه از خروس بگیرید، گسپند بگیرید، گاو بگیرید شطور دیگه شطره بالاترینی شه یعنی بهترین قربانی رو بکن که خدا به تو فاطمه داده و فاطمه مادر این حسن و حسین و این حسن و حسینم الگوی نمونه تمام عیار این پدر و این مادرن این پیغمبر به این عظمت میگه من به خود میبالم که حسن و حسین رو شونمه